شانزدهمین عادت ضد تنبلی در دید عموم باشید. بهانه ای که از میان میرود. حالش را ندارم. شگفت انگیز است که ما تا چه حد به نظری که دیگران در مورد ما دارند بها میدهیم. همه ما دوست داریم که مورد تحسین و ستایش دیگران باشیم. بنابراین این اغلب کارهایی که انجام میدهیم تنها به این دلیل است که در نظر دیگران خوب جلوه کنیم. شما می توانید از این واقعیت به عنوان امتیاز خود بدین صورت استفاده کنید که مسئولیت تمام اهدافتان را در دید عموم بپذیرید. تاثیرگذاری این امر به علت پدیده ای است که به آن اثر هاوسورن میگویند. مطالعات روانشناسی ثابت کرده که مردم اگر بدانند فعالیت هایشان درباره کاری که به آنها سپرده شده توسط دیگران مشاهده می شود، احتمال بیشتری دارد که آن کار را به اتمام برسانند. به عبارت دیگر اگر تنها خودتان از کاری که انجام می دهید با خبر باشید، احتمال اینکه آن را به تعویق بیاندازید، نسبت به حالتی که بدانید دیگران هم از شما انتظار دارند آن کار را به انجام برسانید بیشتر است. اجرای این عادت آسان است: اما مردم به علت ترس از اینکه اعتبارشان را در نظر جمع از دست بدهند از آن پرهیز می کنند. این عادت به معنای آن است که، با گروهی دستچین شده از آدمها درباره اشتباهات و موانع پیشرفتتان صادقانه صحبت کنید از طرف دیگر در دید عموم بودن به معنای بازخوردهای تقویت کننده گرفتن از سوی ایشان نیز هست سادهترین راه گردآوری چونین جمعی از طریق اینترنت است این روزها سایت و اپلیکیشن بسیاری وجود دارند که مردم در آن موفقیتها و شکست را با همدیگر در میان میگذارند یکی از آنها را پیدا کنید و بعد با مردمانی که مانند شما فکر می کنند ارتباط برقرار کنید. همچنین می توانید از اپلیکیشن لیفت استفاده کنید که حاصل ترکیب رسانه های جمعی و عادت پیگیری موفقیت هاست. در آن ثبت نام کنید تا دیگر اعضای لیفت پشتیبان و مشوق شما در کاری که انجام می دهید باشند. اجرای این عادت انجام کارهایتان در دید عموم اصلا سخت نیست. در اینجا به چند روش برای درمیان گذاشتن تلاشهایتان با دیگران و گرفتن بازخورد از آنها اشاره می شود. دوستان و خانواده یک نفر را پیدا کنید و مشوق و پشتیبان همدیگر دیگر باشید. های اینترنتی اپلیکیشن های تلفن همراه از قبیل نرم افزار لیفت سخنگاه های اینترنتی در باشگاه ها و اماکن عمومی محلتان جستجو کنید و مردمانی که هدفی مانند شما دارند را بیابید از شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر یا گوگل پلاس استفاده کنید یک وبلاگ راه بیاندازید و در مورد فعالیت هایتان در آن بنویسید امروزه نسبت به هر زمان دیگری برقراری ارتباط با مردمانی که اهداف و خواسته هایی به مانند شما دارند آسانتر شده است. اهداف و فعالیت هایتان پیروزی ها و شکست هایتان را با جهانیان در میان بگذارید و از تشویقی که از سوی آنان دریافت می کنید شگفت زده شوید. در ابتدا ممکن است با انجام این کار معذب شوید. اما به زودی در خواهید یافت که وقتی مردمی باشند که چشم انتظار به پایان رسیدن فعالیت شما باشند، به تعویق انداختن این فعالیت ها کار دشواری می شود.